گرامیان درود بر شما فایل آوائی دوازدهم و آخر کتاب فیزیولوژی ایمان نوشته نونفخر رو با هم آغاز میکنیم صفحه 159 عنوان نسبت نظریه جان رالز و تلقین ایمان به کودکان در مدارس. حالا و پس از آنچه تا اینجا گفتیم سؤالی ذهن ما را درگیر خود می کند. آیا آموزش دین یا بهتر است بگوییم تلقین ایمان دینی به کودکان در مدارس یک عمل درست و عادلانه است؟ آیا اجازه این کار به آموزش و پرورش عادلانه است یا ممنوع کردن آن عادلانه است. اجازه دهیم یا ممنوع کنیم؟ اگر فقط یکی از این دو کار عادلانه باشد و همه چیز به انتخاب ما بستگی داشته باشد چاره ای نداریم جز این که پاسخ را پیدا کنیم چون در برابر نتایج و عواقب انتخاب انتخابمان مسئولیم می‌دانم که جواب‌های موافق و مخالف زیادی به این سوال داده می‌شود و هر کسی یک طرف ماجرا را می‌گیرد و با استدلال های خود سعی میکند نشان دهد این کار عادلانه است یا غیر عادلانه است اجازه دهید برای یافتن پاسخ به این سوال از یک معیار استفاده کنیم معیاری برای محک زدن عادلانه یا غیر عادلانه بودن یک عمل یا یک قانون این معیار را جان رالز در سال 1971 در کتاب نظریهی در باب ادالت پیشنهاد داد این نظریه را به شیوه سادهی طرح می کنم که فقط کمی در بیان با شیوه جانرالز فرق دارد ولی اصول او کاملا در آن رعایت شده است وقتی می خواهیم در باب عادلانه یا غیر عادلانه بودن یک قانون نظر دهیم گرفتار سوگیری های پیدا و پنهان هستیم که محصول منفعت طلبی ها و تعصب ماست مثلا وقتی میخواییم درباره عادلانه بودن قانون ارث حرف بزنیم نمیتوانیم راحتی زن یا مرد بودن خود را کنار بگذاریم وقتی میخواییم درباره عادلانه بودن قوانین مالیاتی سنف کتاب فروشها صحبت کنیم کتاب فروش بودن یا نبودن ما در نظری که می دهیم و قانونی که عادلانه میدانیم تأثیر دارد. نظر افرادی که در خانواده های مرفه به دنیا میآیند، درباره حمایت های و درمانی از کسانی که در بدترین شرایط اقتصادی متولد می شوند، با نظر آنهایی که در همان بدترین شرایط متولد شده اند و شانسی برای تحصیلات و مندی از درمان مناسب ندارند، یکی نیست و قانون مورد حمایت هر کدام فرق می کند. خیلی وقتها اینکه در چه موقعیتی به دنیا آمده باشیم و در چه وضعیتی به سر بریم، موجب می شود قضاوت متفاوتی درباره عادلانه یا غیر عادلانه بودن یک قانون داشته باشید. خیلی وقتها قضاوت ما بستگی دارد به اینکه پولدار باشیم یا فقیر زن باشیم یا مرد تحصیل کرده باشیم یا بیسواد برده باشیم یا آزاد سوار باشیم یا پیاده شهرنشین باشیم یا روستانشین کارفرما باشیم یا کارگر باهوش باشیم یا کمهوش مسلمان باشیم یا مسیحی یا هندو یا بودایی یا بیدین پیشنهاد رالز برای اینکه بفهمیم واقعاً چه قانونی عادلانه است و این کار را بدون سوگیری انجام دهیم این است که دست به یک آزمایش فکری بزنیم در این آزمایش باید موقعیت، جنسیت، وضع مالی و شغل، هوش، استعدادهایی که داریم، دین، تحصیلات و این قبیل را فراموش کنیم رالز به این وضعیت فرضی که در آن موقعیت و وضعیت فعلی خودمان را فراموش می‌کنیم نام وضعیت نخستین می‌نهد البته ما در این وضعیت نخستین اطلاعات فعلیمان از علوم مختلف از جمله علوم جامعه شناسی و روان شناسی و سیاست و غیره را داریم و کما به ایش می‌توانیم حدس بزنیم پس از اجرای قانون مورد نظر در هر وضعیتی غیر از وضعیت فعلی خودمان قرار داشته باشیم حال و روزمان چگونه خواهد شد؟ مثلا فرض میکنم که هنوز به دنیا نیامدم و معلوم نیست وقتی به دنیا بیایم زن باشم یا مرد شاید زن به دنیا بیایم و شاید مرد به دنیا بیایم آیا ترجیح میدهم در کشوری به دنیا بیایم که قانونش حکم میکند؟ ارسی که به مرد میرسد یک پنجم ارسی باشد که به زن میرسد یا ترجیح میدم در کشوری به دنیا بیایم که در آن زن و مرد ارث برابر میبرند بقیه قوانین هر دو کشور یکسان است به من میگویند معلوم نیست زن به دنیا بیایی یا مرد شاید مرد به دنیا بیایی شاید هم زن به دنیا بیایی فقط زودتر انتخاب کن در کدام یک از این دو کشور می خواهی به دنیا بیایی حال باید کشورم را انتخاب کنم. باید شرایطم را در هر یک از دو کشور سبک سنگین کنم. چه در کالبد یک زن و چه در کالبد یک مرد؟ کشوری که انتخاب خواهم کرد نشان می کدام قانون را عادلانه می دانه. همین معیار را می توان به سنت ها نیز تعمیم داد. مثلا در یک کشور مثل هند مردم خودشان را متعلق به طبقه که در آن به دنیا میآیند میدانند و افراد دیگر طبقات را به طبقه خود راه نمی دهند و اجازه پیشرفت به کسی که در کاست های پایین تر به دنیا آماده است نمی دهند. فرض می کنیم این سنت در یک کشور دیگر وجود ندارد. دو کشور از بقیه جهات مثل هم هستند. من نمیدانم قرار است در کدام خانواده از کدام کاست متولد شوم ترجیح میدهم در کدام کشور متولد شوم آنکه سنت کاستی در آن رعایت می‌شود یا آنکه چنین سنتی ندارد انتخاب من نشان می‌دهد کدام سنت را عادلانه‌تر یا در اینجا بهتر است بگوییم اخلاقی‌تر می‌دانم این روش رالز یک نکته کلیدی در خود دارد و آن اینکه ما را به شکلی ناخودآگاه متوجه همسان بودن همه نفوس می کند. گویی همه ما یک شأن و منزلت ذاتی برابر داریم و فقط در بدنهای مختلف و خانوادهای مختلف و با استعدادهای مختلف و خلاصه در زندگیهای با های مختلف زاده می شویم. و بسیاری از درد و رنجها یا موهبت‌ها که نصیبمان می‌گردد از دست خودمان خارج است و محصول انتخاب خودمان نیست پس لاگل میتوانیم با اصلاح قوانین و سنت ها رنج یکدیگر را کم کنیم قوانین و سنت‌هایی که حد اقل رنج را به وجود آورند عادلانه‌تر و اخلاقی‌ترند در این روش ما خود را به جای هر کس دیگری با هر موقعیت اجتماعی و جنسی و بدنی دیگری قرار می دهیم و حالا می خواهیم به خودمان رنج کمتری وارد می شود اگر و تنها اگر در هر یک از این موقعیت ها به دنیا می آمدیم در نهایت انتخاب ما به آن دیگران که واقعا در آن موقعیت ها به دنیا آمدند رنج کمتری خواهد رساند و یا از رنج آنها خواهد کاست، یعنی ما بین خود و دیگران فرقی نگذاشته ایم، یعنی آنچه برای خود نمیپسندیم برای دیگران نپسندیده ایم. یعنی روش اخلاقی تر را انتخاب کرده ایم. حال برویم سراغ یک سنت و یک قانون دیگر من هنوز به دنیا نیامده‌ام. دو کشور با ساختار دولت ملت در پیش روی من هستند. کشور الف و کشور ب در هر کشور صد دین و مذهب و فرقه مختلف وجود دارد. در کشور الف سنت این چنین است که هر خانواده ای اعتقادات و باورهای دینیش را به عنوان حقایق جاودان و باورهای مقدس به فرزندانش تلقین می کند. و فرزندانش را به مدارسی میفرستد که در آنجانیز همان دین به عنوان امری مقدس به کودکان آموزش داده می و مواد درسی آن مدارس توسط دستگاه روحانیت آن دین تنظیم و نظارت میگردد و این رویه توسط قانون آن کشور حمایت می شود. در کشور به سنت این چنین است که هر خانواده اعتقادات دینیش را به عنوان حقایق جاودان و باورهای مقدس به فرزندانش تلقین نمی کند و مثلا خانواده ها به بچه هایشان که از علت مناسک دینی پدر و مادر می پرسند، پاسخ می دهند ما و بعضی از مردم این کشور به چنین باورهایی اعتقاد داریم ولی بسیاری از دیگر مردم به باورهای دیگر اعتقاد دارند و بعضی از آنها اصلا به هیچ دینی اعتقاد ندارند. در کشور به قانون اجازه نمیدهد هیچ دینی به عنوان امر مقدس به کودکان آموزش داده شود و بچه ها را حد اکثر با تاریخ و مزامین ادیان مختلف آشنا می کنند. ادیان در این کشور آزادند. اما تلقین آنها در کودکی و در دوران مدرسه رسم نیست و قانونی هم نیست. من در وضعیت نخستین هستم. یعنی معلوم نیست در کدام کشور با چه جنسیتی و در کدام خانواده از کدام دین و مذهب و فرقه به دنیا خواهم آمد. اکنون باید تصمیم بگیرم که کدام کشور را برای به دنیا آمدن ترجیح می دهم. کشور علف یا کشور B؟ من باید برای این تصمیم گیری از دانشی که در زمینه روانشناسی، شناسی جامعه شناسی سیاست و از این قبیل دارم استفاده کنم ممکن است در موقعیت فعلیم یک زن مسلمان شیعه یا یک مرد هندو یا یک روحانی شینتو باشم و دین و مذهب خود را به حق و بقیه مردم را گمراه بدانم اما در وضعیت نخستین و آنجا که خود را به قول جان رالز پشت پرده جهل قرار دادم و فرض کردم هنوز معلوم نیست در چه خانواده‌ای با چه دینی به دنیا بیایم این را می‌دانم که ممکن است پس از زاده شدن به دلایلی کنترل از دست من خارج شود و صاحب آن دین و عقیده‌ای که الان فکر می‌کنم به حق است نشوم چگونه اینجاست که باید از آنچه چه می‌دانم استفاده کنم و ببینم در هر یک از دو کشور چقدر شانس دارم به وضعیت و موقعیتی مطلوب تر برسم و همین اکنون برآورد کنم در هر کشور چه مسیری در پیش رو دارم و سر از چه موقعیتهایی در می آبرم. چقدرش دست خودم است و چقدرش دست خودم نیست اگر در کشور الف به دنیا بیایم احتمال اینکه در خانواده ای با همین دین و مذهب و فرقه خاصی که الان به آن تعلق دارم متولد شوم کم است به احتمال زیاد یا در دین دیگری به دنیا خواهم آمد یا در دین خودم ولی در مذهبی دیگر و یا در دین و مذهب خودم اما در ای دیگر متولد خواهم شد که تفاوتهایی با دین و مذهب و فرقهی فعلی خودم دارند و من اکنون باورهایشان و مرام و مسلک خودشان و روحانیونشان را گمراهی می دارن. بیایید از اینجا به بعد آن دین و مذهب و فرقه دیگر را دین غیر خودی بنامید پس به احتمال زیاد اگر در کشور الف به دنیا بیایم در خانواده‌ای با دین غیر خودی متولد خواهم شد خانواده من در کشور الف طبق سنت مرسوم در این کشور از خردسای به من خبر می دهدد که خدای آن دین غیر خودی جهان را خلق کرده و از همه چیز باخبر است و از آنچه در سر من میگذرد و از تمام افکار و نیات من نیز آگاه است. من هم مثل بقیه هووسافنس ها که دارای نظریه ذهن هستند، در سن کودکی آمادگی تمام دارم تا وجود این ذهن آگاه، از محتوای ذهن خودم را باور کنم و قبول کنم او به تمام افکار من احاطه و دانایی دارد بخشهای کوهن مغز من همواره حضور آن نگهبان ذهن یا همان خدای معرفی شده توسط خانواده ام را مد نظر دارند اگر خانواده ام به من خبر داده باشد که خدای آن دین غیر خودی از کسانی که در وجود او و حقانیت دین او شک می کنند عصبانی می گردد و در زندگی این دنیا و دنیای بعدی آنها را عذاب خواهد کرد بخش های مغز من به قشر مغز من اجازه نخواهند داد که به وجود این نگهوان ذهن من و به حرف او شک کنند من از پدر و مادرم خبرهایی در مورد وقوع معجزه توسط افراد مقدس این دین غیر خودی میشنوم و چون باید مثل بقیه هووسافنس ها زندگی را با اعتماد و پذیرش حرفهای بزرگترهایم آغاز کرده باشم، این خبرها را باور می کنم. از آنجا که مثل دیگر انسان ها تحت تأثیر جست ها و بازیگری های هم, هم قرار میگیرم، وقتی خضوع و خشوع پدر و مادر و دیگر اعضای خانواده ام را هنگام نام بردن از آن افراد مقدس می بینم و از رفتارشان در میابم که به طور کامل به حقیقت داشتن آن داستانهای معجز اعتقاد دارند باور به حرفهایشان برایم امیختر می شود. به هر حال من در آن سن اهل تحقیق در ریشه های آن داستانها نیستم بسترشت مغز من حکم میکند که فقط باور کنم از اینجا به بعد آن افراد مقدس نیز تحت حمایت و تایید کامل آن خدا یا نگهبانی که در ذهن من کاشته اند در میآیند و هر آنچه از زبان آن افراد مقدس به من بگویند بدون چون و چرا میپذیرم چرا که بخش های کهن مغز من صلاح نمی در حضور آن نگهبان ذهن آزر و نازر به قشر مغز من اجازه شک و تردید و نقد و ارزیابی افراد مقدس آن دین غیر خودی را بدهند. خانواده من مرا به مدرسه ای می سپارند که همان دین غیر خودی را به من تلقی می کند و خبرهایی از همان دست را در مورد افراد مقدس آن دین غیر خودی می و با همان ژست ها و بازیگری های حاکی از داشتن ایمان و اعتقاد و احترام قلبی بر من تأثیر می گذارند تقریبا تمام کسانی که میشناسم و به آنها اعتماد دارم در حرف و رفتارشان به من میفهمانند که به آنچه میگویند کاملا باور دارند و این برای من یعنی اجماع افراد قابل اعتماد و مشاهده چنین اجماع و اتفاق نظری این حس را در من ایجاد می کند که واقعیت نمی تواند چیزی جز چه آنها می باشد. همه این شبکهی ای که به آن تعلق دارم و به افرادش باور دارم خودشان به یک دستگاه روحانیت خاص و یا به یکی دو روحانی از دستگاه روحانیت دین غیر خودی باور دارند. روحانیونی که گاه سخنرانیهایشان را هم می آن روحانیون با اطمینان تمام در تعیید آن دین غیرخودی سخن می و می بینم که شنوندگانشان هیچ سخنی در مخالفت با آنها نمیگویند و آن روحانیون را به تمامی باور دارند و آنها را به عنوان عالم و دانا پذیرفتند لباس آنها به من می گوید که ایشان به یک مجموعه علمی و متخصص تعلق دارند. این مجموعه توسط قوانین کشور من تأیید شدهاند و اجازه فعالیت دارند. در ناخداغا هم نتیجه میگیرم که پس لابد حکومت نیست با سخنان آنها مخالفتی ندارد. همان حکومتی که مراقب من و خانواده ام است و مراقب از مبادا رسطوران ها و فروشندگان مواد غذایی مواد خوراکی ناسالم به ما بفروشند همان حکومتی که با پلیس و دستگاه قضایی مراقب است مبادا کلاه برداران و دوستان بخواهند اموال ما را از ما بگیرند همان حکومتی که از مردم میخواهد به حرفهای خرافی رمال جادوگران درمانگران متقلب و اینها گوش نکنند و تابع علم و دانش و اندیشه باشند همان حکومتی که مراقب است مواد و قاچاقشی های مواد مخدر بخواهند مواد مخدر به کودکان و نوجوانان بفروشند. به کودکان و نوجوانانی که ممکن است خودشان دوست داشته باشند مواد مخدر را بخرند. اما حکومت دلسوز آنهاست و می داند این کار آینده آنها را به خطر می اندازد. پس با دانش نسبت به عواقب مواد مخدر، مانع از آزادی عمل قاچاقچیان و دسترسی آزاد مشتریهای مواد مخدر به مواد مخدر می شود همین حکومت دلسوز و مراقب و آینده نگر به دستگاه روحانیت این دین غیر خودی که در آن به دنیا آمده ام مجوز داده تا مرا که در سن کودکی هستم راهنمایی کند برداشت من در کودکی این خواهد بود که لابد این روحانیون مورد تایید این حکومت دانا و دلسوز هم هستند پس حرف خلاف واقع نمیزنند ممکن است در سنین نوجوانی با روی خوش یک معلم مذهبی و یا یک روحانی جذب یک گروه از گروههای این دین غیر خودی هم بشوم و ترس از ترج شدن از آن گروه مرا هرچه بیشتر به تایید نظرات گروه سوق دهد. من کم کم در جاها و موقعیتهایی از اقایدم حرف می زنم و اقایدی که خانواده در چارچوب دین غیر خودی به من تلقین کرده اند را به عنوان عقاید شخصی خودم مطرح می کنم. و از اینجا به بعد مثل اکثر هوموساپینس ها دوچار پدیده روانی کوری انتخاب و سوگیری هرچه بیشتر نسبت به اصول و فروع دین غیرخودی می و هر را که در تایید آنهاست می بینم و هر را که در رد آنهاست فیلتر میکنم و نادیده می گیرم. من به واسطه اثر برخورداری یا اثر مالکیت آن دین غیرخودی که در آن زاده شده ام را از بقیه ادیان غیر خودی کشور الف و از همه ادیان دنیا از جمله از دین خودی فعلی هم برتر و بهتر و ارزشمندتر و منطقی تر خواهم دید اگر به من گفته شود که شاید یکی از بقیه ادیان درست باشد و دین تو ناحق باشد به واسطه خطای تخمین احتمال اینکه دوچار اشتباه در انتخاب دین شده باشم را کمتر از واقعیت برآورد می کنم و نیازی به تغییر در عقاید و روش زندگیم احساس نخواهم کرد اگر در طول زندگی چنان که برای درصدی از مردم محتمل است مغزم دست به تصویر سازی هایی بزند و تجربیت خاصی مثل تجربیات ارفانی تجربه نزدیک به مرگ تجربه خروج از بدن و از این قبیل برایم خلق کند آن را تأییدی بر درستی و حقانیت دین غیر خودی خواهم پنداش و گمان خواهم کرد که نظر کرده خدای آن دین غیر خودی هستم و ایمانم به دین غیر خودی سد چندان خواهد شد اگر بعد از دعا به درگاه خدا و یا قدیسین دین غیر خودی احساس بهبودی در خود کنم احتمال دارد اثر دارونما را با معجزه اشتباه بگیرم و ایمانم باز هم افزایش یابد در گرفتاری ها و زمان هایی که دچار استیصال می شوم مغز من سعی خواهد کرد الگوهایی در پدیدهای اطراف بیابد و به من نشان دهد رها شده نیستم من این الگوها را به حساب شواهدی از احاطه و حکمت خدای دین غیر خودی خواهم گذاشت من بخشی از اموال و درآمد خود را در اختیار دستگاه روحانیت آن دین غیر خودی قرار خواهم داد تا هرچه بیشتر تزنین کنند در زندگی بعدی دچار سوء عاقبت نخواهم شد من در برخورد با کسانی که اعتقادات مرا مسخره می‌کنند هر چه بیشتر از آنها دوری خواهم گزید و هر چه بیشتر در گروه همدینانم جذب خواهم شد و هر چه بیشتر تایید اعتقادم به آن دین غیرخودی را از هم همگروههایم خواهم جست تا ذهنم مشوش نشود من شاید در کشور الف به راحتی بتوانم در هر علم و فنی تخصص یابم و از علم متخصصم استفاده کنم. اما هرگاه دانشی که کسب کرده ام با اعتقادات آن دین غیر خودی در تضاد باشد نمیتوانم باورهای آن دین غیر خودی را کنار بگذارم. حتی اگر یک فیلسوف شوم، هم همچنان به اعتقادات آن دین غیر خودی که میرسم مشی فلسفی را کنار گذاشته و به دلیل تراشی برای باورهایم میپردازم من هر استدلال منطقی و فلسفی دال بر وجود یک آفریدگار یا علت ال را نیز دلیل عقلی بر وجود خدای دین غیرخودی محسوب خواهم کرد و خواهم گفت حقانیت دینم توسط عقل و فلسفه نیست تایید و حمایت می‌گردد به عبارتی بسیار بعید است هیچ شانسی برای حقانیت ادیان دیگر قائل شوم و همه شواهد و مدارک حسی و عقلی را به نفع دین غیر خودی مصادره خواهم کرد اگر قرار باشد تا آخر عمر مؤمن بمانم به احتمال زیاد به همان دین غیر خودی مؤمن خواهم مانم من که الان به درستی و حقانیت دین خودیم دارم. اگر در کشور الف به دنیا بیایم و در یک خانواده با یک دین غیر خودی پرورشیاوم چقدر شانس دارم از آن دین غیر خودی بریده شوم و به این دین خودی هم به بپیوندم و رستگار شوم یک هوموساپینس چقدر شانس دارد که از دینی که در آن یافته گسسته شود و به دین دیگری درآید فیزیولوژی ایمان تا چه حد این راه را برایش باز میگذارد ذهنش تا چه حد آزادی انتخاب دارد؟ خب من هم یک هوموساپیانس هستم در کشور علف عملا چقدر آزادی انتخاب خواهم داشت تا بالاخره روزی دین خودی فعلیام را پیدا کنم و آن را به دین غیر خودی ترجیح دهم. اگر در کشور بی به دنیا بیایم و تا پایان تحصیل در مدرسه هیچ دینی به من تلقین نگردد چقدر شانس دارم در برخورد با دین خودی فعلیم به آن بگیرم من اعتقاد دارم دین خودی فعلیم به طور واضح و آشکار حق است و هر کس که بدون تعصب و جانبداری با حقایق آن آشنا شود به راحتی آن را میپذیرد با این حساب اگر من در کشور بی به دنیا بیایم ممکن است هرگاه با دین خودی فعلیم مواجه شوم آن را به راحتی پذیرا گردم چون هنوز ذهنم آزادی انتخاب دارد و دچار تعصب نشده است. دوست دارم در کدام کشور به دنیا بیایم؟ الف یا به؟ یا بهتر است بگوییم با این میار کدام سنت و قانون را اخلاقی و عادلانه میابم؟ سنت و قانون کشور الف یا سنت و قانون کشور به؟ عنوان کلام آخر گمان میکنم شایسته است به مغوله فیزیولوژی ایمان افزونتر از آنچه در این کتاب شرح دادم پرداخته شود چرا که گفتنی در این باب بسیار بیش از چیزی است که عرضه داشتم آرزویم این بود می توانستم این کتاب را به چاپ برسانم تا همین اندک در دسترس علاقهمندان بیشتری قرار گیرد اما خواننده گرامی درک میکند نه در مورد این کتاب و نه در مورد دیگر کتاب هایی که با نام نون فخر نوشتم، امکان این کار برایم فراهم نیست. اگر کسی این کتاب و یا کتاب های دیگر مرا در خور چاپ یا ترجمه و یا صوتی کردن بیابد نیازی به اجازه من ندارد و ضمن سپاس و قدردانی بسیار از او بر همت بلند و اراده والایش درود می‌فرستم. نون فخر دوستان کتاب فیزیولوژی ایمان همینجا به پایان میرسه. نویسنده در ادامه دیگر کتاب های خودشو معرفی کرده. اولیش کتاب برهان علیت برهانی در رد وجود خدای ادیان توحیدی و روز جزاست. همینطور که از نام چالشی کتاب مشخصه با اثری مواجه هستیم که میخواد نشون بده برهان علیت که تا حالا تصور می برهانی در جهت اثبات خدای ادیان هست، در واقع برهانی برای رد وجود خدای ادانهه و روز جزا رو هم رد میکنه. من این کتاب خوندم و هم از اینکه در قالب یک داستان پرکشش نوشته شده. و هم از این جهت که مفاهیم فلسفی رو بسیار ساده و همه فهم کرده. و هم بابت طرح مقوله جببر و اختیار، که مباحثی جذاب و پرطرفداره اونو خیلی پسندیدم و تسلط نویسنده بر مسائل فلسفی برام جالب بود اونقدر تسلط از خودش در این کتاب نشون داده که حتی در بعضی جاها که به نظرش میرسیده برهانهای قدیمی برای تکمیل برهان علیت ناکارآمد و یا غیر قابل فهمه خودش برهانهایی رو از زبان قهرمانهایی داستان طرح میکنه که هم جدید و هم به زبان امروزی اونطور که خودش میگه و به این ترتیب موجب تحکیم برهان علیت میشه و نهایتا سعی میکنه نشون بده چطور این برهان با فرض درستی میتونه قوی ترین برهان برزد ادیان توحیدی و روزه جزا باشه تصمیم دارم این کتابم براتون به صورت آبایی در بیارم کتاب دیگه نونفخ کتاب سفر به دل عدیانه که اونو برای کودکان و نوجوانان نوشته. البته کتاب برای تمام سنین سرشار از مطالب خوندنی و شنیدنیه. اما چنان ساده نوشته شده که به درد نوجوانها هم میخوره. این کتابم در قالب یک داستان بسیار جذابه. درباره یک پسر دوازده ساله ایرانی که همراه پدرش، به کشورهای مختلف سفر میکنه و با آدمایی با دینهای مختلف آشنا میشه و هینه آشنا شدن با باورهای دینی اونا یک یکسره با اونا بحث میکنه و این مباحثات خیلی جذابه این کتاب در مورد آشنایی با ادیانی غیر از اسلامه امید دارم بتونم این کتابم براتون به صورت آوایی در بیارم کتاب بعدی نویسنده اسمش هست مقلطه های روحانیون که هنوز نخوندمش. خب گرامیان با آرزوی سلامتی برای شما تا درودی دیگر در آغاز کتابی دیگر بدرود.